مصنوی معنوی مولوی برنامه سی و هشتام اعتماد کردن بر تملق و وفای خرس اجدهای های خرس را در می کشید شیرمردی رفت و فریادش رسید. شیرمردانند در عالم مدد. آن زمان کفغان مظلومان رسد. بانگ مظلومان زهر جا بشنوند. آن طرف چون رحمت حق میدوند. آن ستونهای خللهای جهان. آن طبیبان مرزهای نهان ماز مهرو و داوری و رحمتند همچو حق به علت و بیرشوتند این چه یاری می کنی یک بارگیش گوید از بحر غم و بیچارگیش مهربانی شد شکار شیر مرد در جهان دارو نجوید غیر درد هر کجا درده دوا آنجا رود هر کجا پستیست آب آنجا دود آب رحمت بایدد رو پست شو وانگهان خرخمر رحمت مست شو رحمتا در رحمت آمد تا بسر بر یکی رحمت فرو ما ای پسر چرخ را در زیر پا آر ای شجا بشنو از فوق فلک بانگ سما پنبه وسواس بیرون کن زگوش تا به گوشت آید از گردون خروش پاک کن دو چشم را از موی عیب تا ببینی باغ و سروستان غیب دععفع کن از مغز و از بینی زکام تا که ریح الله در, آید در مشام هیچ مگزار از تب و صفرا اثر تا بیابی از جهان طعم شکر داروی مردی کن و این نین مپوی تا برون صد گون خوب روی. کنده تن را زپای جان بکن. تا کند جولان به گرد آن چمن. غل بخل از دست و گردن دور کن. بخت نو دریاب در چرخ کهان. ور تانی به کعبه لطف پر. ارزکن به چارگی بر چارگر زاری و گریه قوی سرمایه است رحمت کلی قوی تردایه است دایه و مادر بهانه جو بود تا که کی آن طفل او گریان شود تفل حاجات شما را آفرید تا بنالید و شود شیرش پدید گفت ات الله بیزاری مباش تا بجوشد شیرهای مهرهاش هوی هوی باد و شیرفشان ابر در غم ما اند یک ساعت تو سبر فه سماه بشنید کم ای اندر این پستی چه بر چف ای، ترس و نومی دان آواز غول، می کشد گوش تو تا قر سفول. هر ندایی که تو را بالا کشید، آن ندا میدان که از بالا رسید. هر ندایی که تو را حرس آورد، بانگ گرگیدان که او مردم درد. این بلندی نیست از روی مکان، این بلندی هاست سوی عقل و جان. هر سبب بالاتر آمد از اثر، سنگ و آهن فائق آمد بر شرر. آن فلانی فوق آن سرکش نشست، گرچه در صورت به پهلویش نشست، فوقی آنجاست از روی شرف، جای دور از صدر باشد مستخف. سنگ و آهن، زین جهت که سابق است، در عمل فوقی این دو لایق است. وان شرر از روی مقصودی خیش، زاهن و سنگ است زین رو پیش و بیش، سنگ و آهن، اول و پایان شرر، لیک این هر دو تنند و جان شرر. آن شرر گر در زمان واپستر است، در صفت از سنگ و آهن برتر است. در زمان شاخ از سمر سابقتر است، در هنر از شاخ او فایقتر است چون که مقصود از شجر آمد سمر پس سمر اول بود آخر شجر خیر چون فریاد کرد از اجده شیر مردی کرد از چنگش جدا حیلت و مردی به هم دادند پاشت، اجده را او بد این قوت بکشت ها را هست قوت هیله نیست نیز فوق هیله تو هیله است هیله خود را چ دیدی باز رو کس کجا آمد سوی آغاز رو هرچه در پستی است آمد از بالا چشم را سوی بلندینه حلا، روشنی بخشد نظر اندر والا گرچه اول خیرگی آرد، بلا چشم را در روشنایی خوی کن گر نه خوفاشی نظر آن سوی کن عاقبت بینی نشان نور توست شهوت حالی حقیقت گور توست آقبت بینه که صد بازی بدید، مثل آن نبود که یک بازی شنید. زان یکی بازی چنان مغرور شد، که از تکبر زوستادان دور شد. سامری آن هنر در خود او ز موسا از تکبر سرکشید. اوز موسا آن هنر آموخته و از معلم چشم را بردوخته. لاجرم موسا دگر بازی نمود تا که آن بازی و جانش را ربود. ای بسا دانشکن در سر دود تا شود سرور بدان خود سر رود. سر نخواهی که رود، تو پای باش. در پناه قطب، صاحب رای باش. گرچه شاهی، خیش فوق او مبین. گرچه شهدی، جز نبات او مچین. فکر تو نقش است و فکر اوست جان. نقد تو قلب است و. نقد اوست کان او توی خود را بجو در اوی او کو کوگو فاختش او سوی او ور نخواهی خدمت ابنای جنس در دهان اجده همچو خیرس که استاد رهانت مرترا و از خطر بیرون کشاند، مرترا زاری می میکن چو زورت نیست هین. چون که کوری سرمکش از راه بین، تو کم از خرسی نمی نالیز درد. خرس رست از درد چون فریاد کرد. ای خدا این سنگ دل را موم کن ناله را تا خوش و مرحوم کن گفتن نابینای سائل که دو کوری دارم بود کور کو همه گفت الامان من دو کوری دارم ای اهل زمان پس دوباره رحمتم آرید هان چون دو کوری دارم و من در میان گفت یک کوریت میبینیم ما آن دگر کوری چه باشد وان ما گفت زشت آوازم و ناخش نوا زشت آوازی و کوری شد دوتا بانگ زشتم مایه غم می شود. مهر خلق از بانگ من کم می شود. زشت آوازم به هر جا که رود مایه خشم و غم و کین می شود. بر دو کوری رحم را دوتا کنید. این چونین ناگنج را گنجا کنید زشتی آواز کم شد زینگله خلق شد بر وی بر رحمت یک دله کرد نیکو چون بگفت او راز را لطف آواز دلش آواز را وان که آواز دلش هم بد بود آن سه کوری دوری سرمت بود لیک وحابان که به علت دهند بو که دست بر سر زشتش نهند چونکه آوازش خوش و مظلوم شد زو دل سنگین دلان چون موم شد ناله کافر چو زشت است و شهیق زن نمیگردد اجابت را رفیق اخسعو بر زشت آواز آمده است کوز خون خلق چون سگ بود مست چون که نال خرس رحمت کش بود نالت نبود چونین ناخش بود دان که با یوسف تو گرگی کرده ای. یاز خون به گناه تو توبه کن و از خرده استفراغ کن ور جراحت که نشد رو داغ کن تتمه حکایت خرس و آن ابله که بر وفای او اعتماد کرده بود خرس هم از اجده چون وارهید وان کرم زان مرد مردانه بدید. چون سگ اصحاب کف آن خرس زار شد ملازم در پی آن بارد بار. آن مسلمان سرنهاد از خستگی خیرس هارس گشت از دل بستگی آن یکی بگذشت و گفتش حال چیست ای برادر مر تو را این خرس کیست وا گفت و حدیث اجده گفت بر خرس منه دل ابله دوستی ابله بتر از دشمنی است. او به هر که دانی راندنیست گفت والله از حسودی گفت این ورنه خرسی چنگری این مهر بین گفت مهر ابلهان اشوده هست این حسودی من از مهرش به هست هی بیا با من بران این خرس را خرس را مگزین محل هم جنس را گفت رو رو کار خود کن ای حسود گفت کارم این بود و رزقت نبود من کم از خرس نباشم ای شریف ترک او کن تا منت باشم حریف بر تو دل میلر زدم زندیشه ای با چونین خرس مرو در بیشه ای. این دلم هرگز نلرزید از گذاف. نور حق استین، نه دواب و نه لاف. مؤمنم، ینظر به نور لح شده. هانوهان بگریز از این آتش کده. این همه گفتو. به گوشش در نرفت، بدگمانی مرد را است زفت، دست او بگرفت و دست از وی کشید، گفت رفتم چون نی یار رشید، گفت رو بر من تو غمخاره مباش، بلفزولا معرفت کمتر تراش، باز گفتش من عدوی تو لطف باشد گربیایی در پیم گفت خواب هستم مرا بگذار و رو گفت آخر یار را منقاد شو تا بخسبی در پناه آقله، در جوار دوست صاحب دل در خیال افتاد مرد از جد او. خشمگین شد زود گردانی رو کین مگر قصد من آمد خونی است یا تمع دارد گدا و تونی است یا گروبست است با یاران بدین که بترساند مرا زین هم نشین خود نیامد هیچ از خبس سرش یک گمان نیک اندر خاطرش زن نیکش جملگی بر خیرس بود او مگر مر خیرس را همجنس بود آقلی را از سگی تهمت نهاد خیرس را دانست اهل مهرداد گفتن موسی علیه السلام گوساله پرست را که آن خیالان و حزم تو کجاست گفت موسی با یکی مست خیال کی بدندیش از شقاوت و زلال صد گمانت بود در پیغمبریم با چنین برهان و این خلق کریم صد هزاران معجزه دیدی زمن صد خیالت میفزود و شک و زن از خیال و وسوسه تنگ آمدی تن بر پیغمبریم میزدی گرد از دریا برآوردم ایان تا رهیدیت از شر فرعونیان زاسمان چل سال کاسا و خان رسید و دعایم جوی از سنگ دوید این و صد چندینو چندین و چندین گرم و سرد از تو ای سرد آن توهم کم نکرد بانگ زد گوسالهی از جادویی سجده کردی که خدای من تویی آن توهمهات را سیلاب برد زیرکی باردت را خواب برد چون نبودی بدگمان در حق او چون نهادی سرچنان عیزش رو چون خیالت نامد از تزویر او بس فساد سهر احمق گیر او سامیری خود که باشد ای سگان. که خدای بر در جهان چون در این تضویر او یک دل شدی و از همه اشکالها ها آتل شدی گاو می شاید خدایی را بلاف در رسولیم تو چون کردی خلاف تیشگاوه سجده کردی از خری گشت اقلت سید سهر سامری چشم دزدیدی زنور جلال، اینت جهل وافر و عین زلال شهبران بران اقل و گزینش که تو راست چون تو کان جهل را کشتن سزاست گاو زرین بان کرد آخر چه گفت که مقن را این همه رغبت چه گفت زن عجبتر دیده از من بسه لیک حق را کی پذیرد هر خسه باطلان را چه رو باید؟ باطله آتلان را چه خوشایت؟ آید؟ آتله زان که هر جنس رو باید جنس خواهد گاو سوی شیر نر کی رو نهد گرگ بر یوسف کجا عشق آورد جز مگر از مکر تا او را خورد چون زگرگی وارهد محرم شود. چون سگ کهف از بنی آدم شود. چون ابو از محمد برد بو گفت هازا لیس وچهن کازه بو. چون نبوت بو جهل از اصحاب درد دید صد شق قمر باور نکرد. دردمند کش زبام افتاد تشت. زو نهان کردیم حق پنهان نگشت. وان که او جاهل بود از دردش بعید چند بنمودند و او آن را ندید. آینه دل صاف باید. تا در و واشناسی صورت زشت از نکو. ترک کردن آن مرد ناصح بعد از مبالغه پند مغرور خیرس را آن مسلمان ترک ابله کرد و تفت زیر لب لا حول گویان باز رفت گفت چون از جد و پندم و از جدال در دل او بیش می زاید خیال پس ره پند و نصیحت بسته شد امر اعرض انهمو پیوسته شد چون دواید می درد پس قصه با طالب بگو برخان عبست چون که اما طالب حق آمده است فقر رو را نشاید سینه خست، تو حریسی بر رشاد مهتران، تا بیاموزند عام از سروران. احمدا دیدی که قومی از ملوک مستمی گشتند، گشتی خشک بوک، این رئیسان یار دین گردند، خش، بر عرب اینها سرند و بر هبش، بگذرت این سیت از بسر و تبوک، زنک اناس و علا دین الملوک. زین سبب تو از ذریر محتدی رو بگردانیدی و تنگ آمدی. کن در این فرصت کم افتد این مناخ، تو زیارانی و وقت تو فراخ. مزدهم میگردیم در وقت تنگ، این نصیحت میکنم نس خشم و جنگ. احمدا نزد خدا، این یک زریر، بهتر از صد قیسر است و صد وزیر. یاد انناس و معادن هین بیار، معدن باشد فزون از صد هزار. معدن لال و عقیق مکتنس بهتر است از صد هزاران کان احمدا اینجا ندارد مال سود سینه باید پرز ز عشق و درد و دود امی روشندل دل آمد در مبند پند او را ده که حق اوست پند گردوسه ابله تو را منکر شدند، تلخ کی گردی چو هستی کان قند. گردوسه ابله تو را تهمت نهد، حق برای تو گواهی میدهد. گفت از اقرار عالم فارغم، آنکه حق باشد گواه او را چغم؟ گر خفاشی را خورشید خوریست آن دلیل آمدگان خورشید نیست نفرت خفاشگان باشد دلیل که منم خورشید تابان جلیل گر گلابی را جوال راغب شود آن دلیل ناگلابی می کند گر شود قلب خریدار محک در محکیش درآید نقص و شک دزد شب خواهد نروز این را بدان شب نیم روزم کتابم در جهان فارقم فاروقم و غلبیر وار تا که که از من نمی یابد گذار آرد را پیدا کنم من از سبوس تا نمایم کین نقوش استان نفوس من چو میزان خدایم در جهان نمایم هر سبک را از گران گاو را داند خدا گو خر خریداری با درخور کاله ای. من نگاوم تا که گوسالم خرد من نخارم کشتری از من چرد، و گمان دارد که با من جور کرد، بلکه از آینه من رفت گرد.